روز رادیو فیلممون شکار روباه هست که تقدیم میتون میکنیم رادیو فیلم شکار روباه فیلمی از مجید جوامرد بازیگران دانییال حکیمی سام درخشانی ملیسا مهربان سیمون باغداساریان و فرهاد قائمیان. موسیقی ناصر چشم‌آزر تهیه کننده سید محسن جاهد سیگنال های دریافتی از ماهواره برجستان سلین پالتو چرمی مشکی پوشیده با چکمه های مشکگرره ورودی یک کتاب فروشی رو برانداز میکنه با قدم‌هایی مسمم به سمت ورودی فروشگاه میره تو کتابفروشی کتابی انتخاب میکنه از پله ها بالا میره و تو صف میسته صف علاقمندان نویسنده که منتظرن نویسنده کتابشون امضا کنه نوبت سلیمش موبایل خانم نویسنده زنگ میخوره های وی سلیم به دقت مکالمه نویسنده رو گوش می‌ده yes, <laughs> نویسنده اوصای میکنه کتاب سلیم رو امضا کنه سلین از کتاب فروشی بیرون میاد منتظر میستیم خانم نویسنده که از فروشگاه بیرون میاد تو مسیر پارک تا تالار نمایش سلین تعقیب صحنه نیمه تاریخ نمایش و بازیگرانی که تمرین میکنند. خانم نویسنده از سالن نمایش بیرون میاد به سمت سرویس های بهداشتی میره. سلیم با کتاب امضا شدهش نویسنده رو دنبال میکنه سلیم وارد محوطه سرویس های بهداشتی میشه تک تک سرویس ها رو چک میکنه جلوی یه در میسته دستگش های رو دست میکنه اسلحه رو در میاره خانم نویسنده که در رو بازیم کنه سلین رو به سمتش میگیره و شلیک میکنه سلین وارد یه دستشوی دیگه میشه اضافه چی؟ وارد های بهداشتی میشه جلوتر میاد با جسد تیرخوردهٔ نویسنده مواجه میشه سلین از پشت با تکه سین که دور گردنش میپیچه اونو خفه میکنه نمایش ادامه داره سلین به سرعت تالار نمایش رو ترک میکنه سوار ماشین سیاهی میشه و حرکت میده با موبایلش شماره میگیده و گزارش میده اموریت انجام شد بیرون شهر کده 239 یک ماشین کرمرنگ پارک شده سوار اون ماشین شد بیا کده 311 بیرون شهر ماشین سفیدی کنار جاده پارکه سلیم ماشینشو عوض می کنه و پلیس بلافاصله فاصله از کمین خارج میشه. سلیم از آینه ماشین پلیسو رو تو داشپور دنبال اسلحه می گرده. اما خبری از اسلحه نیست تلفونشو در میاره می لعنت یا همتون کسافتی متاسفم سلیم این یه دستوره سلین کولاگیس از سرش بر می سعی میکنه تو سرعت بالا ترمز کنه ماشین منحرف میشه پلیس به دنبال سلین ماشین تو سراشیبی در پایین میره دور خودش میچرخه و منفجر میشه موتورسوار ناظر بالای تپه به سرعت دور میشه و پلیسا پیاده میشن سوختن ماشینو میبینن سیگنال های ماهواره ای تلویو اسرائیل مرکز کنترل های تلویزیونی Golan عم کارش با یک لپتاپ مشغولم. سلیم مامور خونید. و خیلی هم خوب مرد. فکر می کرد بخشیده شده. اون به زمان فکر نکرد. ایروان ارمنستان. داخل سالن کنفرانس دکتر آزاد در میان یک جمع کارشناس مقاله شو ارائه بدید. اکنون پس از سالها کار سخت و تحقیقات شبانه‌روزی، تئوری‌های ما که های نوینی از فیزیک هسته‌ای میباشد، به نقطه عملی خود رسید. این علم جدید با دسترسی ارزان و آسان و امنیت بالا در جهت اهداف انسان دوستانه موردی استفاده قرار می گیرد. متشکرم تو پارت این متشکرم از حضور همه دانشجویان و اساتید اینکه تمام شدن مقاله هزار دکترا رو می کنم و دکترا تشکر میکنن من جورنالیست نیستم یعنی هستم بیسر خوش بخدم سمیت داد خوش دکتر ماشین تو ناماده است حالا کمی در با شما صحبت من نظارت میخوام پرواز داریم باید سریم روزی خانم اصرار داره و دکتر گفته کنه در همین لحظه ماشین دکتر منفجر میشه دکتر همراهش مبهوت نگاه میکنم نمایی از شب ایروان دکتر و سهراب همراه ورونیکا در حال گفتگو هستن من که هنوزم بهتادم الان هم باید همون تیکه تیکه شده باشیم واقعا که باید به شما بگیم آنجلا به جای ورونیکا فرشته نجات <تصفيق> رانا نر بگو او 2425 سرسه بیچاره بل گردون ما شد این گربانی های پنهان این جنگی سرد و ممکنه باز هم داشته باشه. ببخشید شما اهل کجا هستین؟ اه من ساکن لندن هستم مادر ایرانی پدر انگلیسی موفق باشید سرابجمع به پرواز انگلیسی ما بریم؟ بریم. من بیرونم به دخشت با و سهرار و فیرونیکا در رسولان میمونم بردر خیلی سخت و ممکم من فکر میکردم که ما با هم میتونیم دوست شد به هم فکر ممکنه ولی شما بردرها با هم کار کرد؟ نه من هنوز خیلی مونده که به اون برسم من دانشجوم دارم پای نامه می نویسم دودو دو شلیم استاد راه نمامه یعنی همه کس هم. من کاتولوهای شما رو میخورم تو ماشین دکتر آزاد و سهراب همراه سرهنگ دارن به سرعت در اتوبان حرکت متاسف هم که نتینستم همراه تو بیان حال الان شما از دانشمندهای خبرسازی من که نه اما داداش شلیت رو خودتو به مشمردگی نزم کمک های تو هم تاثیر نبود از سر از این به بعد موازده شما دوتا برادر باشد تو رو خوده علکی میوه پیدنه بذار کارمونو بکن جناب درست در باید مواظب رابطت با آدم باشی؟ منظورت چه؟ خودت خوب میدونه چی دارم دکتر کتابی از جلوی داشبورد ماشین بر میداره؟ میبینم داری کتاب میخونه؟ آره همون کتاب یه که گفتم بحشت در دمونا بهترین کتاب زده سهیانستی ببینم؟ خوبه من گفته که نویسنده این کتابو کشتنگیرن که از خبره شو نیده باریکردام مثل همیشه میشه خبرهای تازه رو زودتر از من میشنم <تصفيق> روی عیون خونه دکتر پشت میز نشسته و روزنامه میخونه مادر با سینی چای و صبحانه میاد وسایل روی میز بذاره <تصفيق> علی فکر کنی یه پروژه گرفته که باید با هم و میدونم. می اسم هم <تصفح> خیلی برونیکا علی، تو چیزی میدونی؟ کامپیوتر در حال کار کردن صورا یه کمی به خودت استراحت نمیدی <تصفيق> برونیکا یک چند مقاله جالب تحقیقاتی پرسده از لندن مقاله ها رو که دیشب فرستده بود خب. آره دیگه داره توضیحشون بود ظاهرم توضیحاتش هم خیلی مفصله <تصفيق> <تصفيق> همزمان که دکتر میخواد بره مادرم میرسه داداش علی؟ آزیت نکن دیگه. برو. علی جان نکن دیگه. پس مثل تو خوبه که بعد از اون مرحوم نه فکر زن باشی نه ازدواج. دکتر به مادر اشاره میکنه تا سهراب رو ببینه. دکتر وارد اتاق خودش میشه. دکتر همراه سهراب از پله های مرکز تحقیقاتی بالا میاد. او مرکز انرژی اصلی است. دکتر درباره مطالب مختلف برای سورا توضیح داد. به نتیجه خوبی در رسید سورا. تئوریز، پرکتیکال البته لطفا که شما ولی اگه ارزش بدی، یکی می‌خوام ادعا کنم کار خودم. حوا به توریام متالقتو بوده. مراته نمی‌دونی. وقتش یه وقتش خودتو جدی بگیری من اگه تو رو نداشتم چی کار داداش داداشنی یکی دیگر بدو میکرده یکی دیگره میخوام چیکار. یکی هست که همچی جای آدمو پر کنه منظورت چیه؟ آمه توی درازد دو همویل سهراب زنی خود یه لحظه. بله ورونیکا پشت خط سهراب زده شده <تصح> شما این این آره آره آره, آره. حتما همین الان رو رو باشه باشه خدافز عجب روز بیسیه پسر ورونیکاس از لندن اومده ایران الان تهرانه بهترین موقعیت فرودگاهه باید برم دنبالش بکنم اومده دنبال ما برگ خوبشی برگ خروج رو به برادر میده تا امضا کنه. خدا بس. بهش به من یکی حساب باز نکنه. فضای باز یک رستوران در شب. ورونیکا و سهراب پشت یک میز نشستن برای خودشون چای می‌ریزن. همیشه مادر در مورد دیدنی های ایران خیلی به من تعریف می کرد در مورد دیدنی های شیراز شیرای حافظ اصفهان. و... ما اصولتاً اسفحانی هستیم مادر من هنوز خونه پدریم رو تو اصفهان نگردشه من دوست دارم برم اصفهان. شیندم که تو هست که منم خیلی دوست داشتم همراهتون کنم من اسپانول مثل کف دستم بلدم ولی ولی چی؟ آخه من الان درگیری یه تئوری هستم. یه تئوری که دداشلی میگه اگه اونو به اثبات برسونم قوقا میکنه. توی استفاده‌ام توی سازمان انرژی اتمی هم خیلی تاثیر داره. تئوری نمیتونه میتونه چند روز کنه؟ میتونه من از انگلیس اومدم فقط به خاطر تو و این که کاری بدم برای تو همچنین برادرت علی تو لندن؟ داده شلیم که فکر نمی قبول کنه ولی من خیلی حیات جان زده شدم دکتر آزاد و همکارش با پوشش محافظ زده اشعه از در بیرون میاد سرهنگ از پشت شیشه به دکتر اشاره میکنه کیسه ای که دستش هست و بهشون دکتر میده سرهنگ تو اتاق استراحت منتظر دکتر نشسته خسته نباشی پروفیسر علیازان من نباشید نباشی چه کردی؟ اصلا تاب نشده. دست در نکنه. حتما از همون بستنی هم مشقیه دیگه. آره. دکتر و سرحنگ شروع می‌کنن به بستنی خوردن. یک دو قاشق بستنی می‌خورم و هملیگرو نداه می‌کنم. همی خسته بودم گفتم بیا لجه تو در بیارم و سر به سرت بذارم همین حالا چرا لج منو در میاری؟ دیواری کتاته از دیوار من پیدا نکردی؟ بازم نگرانه داداش کچیکه شدی ات فقط میخستم راجع به همین موضوعی با حرف بزنم چرا به فکر خودت میسی؟ هزار بار بهت ات خفتیم که میدونم که حرفم مبتزر نمیزنی ولی مطمئن باش با اینکه این همه سرم شلوخه و این همه کار روش اگه کسی پیدا شد معدلش نمی حالا حال راحت شد؟ آره خوب بسنی تو می کا و سهراب روی زاینده رود با قایق پدالی گردش میکنند مکان های تاریخی اصفهان می بینند عکس های یادگاری می نزن همزمان که از گنبدهای فیروزه‌ای عکس می گیرند موقع اذان می شود یکا و صاب داخل مسجد شدن من این صدا رو خیلی دوست دارم مسلمون بودنی؟ اونم دوست داریم درمالش فکر نکردم شاید مجبوری؟ دمادش جدی فکر میدید این یه جور پیشنهاده؟ نه خیلن یه جور شیطنه سهراب و دکتر آزاد با هم اومدن پارک احتیاجی به اومدن اینجا نبود این حرف رو میتونستی تو خونه رک راست بگی میدونم که اینجا جاش نیست ولی حرف از دونستن ازن سهراب که اصلاً نمیدونی داری چیکار کار ورونیکا روی پل قدم بزنه من فقط میدونم که میخوام با اون برم علی بزار برم اگه اینجا بمونم دیگه صحرا به قبل نیستم تازه اونجا آیندم هم روشن اونم تو رو اینقدر دوست داره اصلا میدونه نمیخوام بدونه آشفش ندم آیه آیه آیه من اون روزی که پاچو و تو تهران میدونست که عاشقش میشه شی آیه چیه؟ مگه دانشمندا نمیتونن عاشق بشن دکتر از سهراب یدا میشه. تو مسیرش به ورونیکا میرسه چند لحظه مقابل ورونیکا تحمل میکنه و از پله های پارک بالا میره ورونیکا به سمت سهراب میره از بالای پله‌ها نگاهش می‌کند مادر برای چمدون و سهراب آماده میکنه دکتر روی صندلی راحتی نشسته سهراب پایین پای دکتر جلوتر میاد و بسته کادو شده را از دکتر می‌گیرد داده خوشحالی این منظره این چی میگن؟ صحباتیه؟ نوی صحباتین یادگاریه آه, آه رو من باید بعدا برای شما بگیرم حالا شاهنامه؟ آخر من بی سواد چطوری اینو بخونم؟ صحبه که شاهنامه نخونه صحب نیست خدا کنه بعدم مثل صورا به شاهنام نشه دفتیکی بد جوری هرمی شد صورا دمی رفتن تو خدا از زهر پا نزن تو هیچ وقت دارو نمیشه میخوام برم اونور قوقا کنم وقتی بیایی اونجا به ام افتخار میکنی قول بده که زود میای پیشم با مادر تو قول بده که زود برگرد مادر تصاویر ورونیکا روی مونیتور پخش میشه. آسر هنگ در موردشون توضیح ورونیکا اسمیت فرزند جاناتن اسمیت انگلیسی و فرخوانده شکیبا ایرانی 29 ساله اهل لندن فارغ التحصیل رشته فیزیک اتمی و همچنین ادبیات فارسی از کمبریج لندن. اینو که دارم میبینم. نظر تو چیه؟ والا ظاهرا که مشکلی نیست اما تو این و زمونه اگه مجنومی هم وجود داره باید خیلی آقلانه رفتار کنه سیگنال های معوارهی لندن انگلیس نمای از رودخانه تایمز و چرخ و فلک بزرگ لندن. خونه پدری ورونیکا سهرا و اسمیت پدر ویرونیکا در حال گفتگو هستند. ویرونیکا با سینی چایی وارد میشه پدر ویرونیکا میکروفون رو به هنجرش نزدیک میکنه کاری داری کردن در همه جای دنیا سخته اگه در رومتو با اقامت باشه کمی بیشتر پدر چرا میترسونیش؟ مردان بزارگ حق ترسیدن ندارن دختر حتی حق ندارن آقا در بیارم تو بازیگر خوبی نیستی پسر. حالا اینکه بازیگر خوبی نیستم خوبه یا بد ندونی من برای سازمانم احتیاج به بازیگر ندارم یه محقق با ثبات و قابل اتمیان میخوام که تو هستی وقتی دخترم تعیید میکنه این یعنی بالاترین و قویلترین زمانت نمای رودخانه تایمز و قایقهایی که روش تردد می‌کنم. نمای شهر لندن پدر ویرونیکا آقای اسمیت در حالی که داره سیگار میکشه پشت میز کارش نشسته و مشغول مطالعه است سهراب و همکارش منتظر اکسل عمل اونن هر دو نگران نشستند آفرین سوراب این تئوری عالیه علم ما تو به اوج میرسه پسرم کرم پدر من با کمک دوستم جری دیویس به این تئوری رسیدیم من از همراهی با سراب همیشه لذت بردم ما میتونیم با این تئوری رجاع های بزرگی رو راه اندازی کنیم البته استفاده از این تئوری بسیار حساسه و خطرناک ما باید این علم و همراه متخصصین به نفع مردم شکوفا کنیم. This is هر شخصی یا سازمانی نباید از این موضوع با خبر بشه. باید رازدار باشید فراموش نکنید که ما یک سازمان خصوصی با مسئولیت محدود هستیم امیدوارم فهمیده باشید هوا تاریکه دکتر آزاد با ماشین وارد حیات خونه میشه دکتر میاد تو اتاق آلارم مسنجر کمپیوتر نظرشو جلب میکنه سهراب روی اینترنت تماس تصویری گرفته سلام داداش علی کجایی بابا دو ساعت پشت ختم سلام دادشی تو که میدونی من عاشق کارانم عشق منم کار دستم داد مرد خونه زندگی شدن آخه <تصفيق> اینم سرکار خانم آزاد علی سلام سلام عرض به بهتون تبریک میگم قافلگیرم کردی هرچند که سهراب عادت داره که بی خبره یه کاری یک بکنه دیگه یه لازم صاحبم مادر جون بیا با عروس خانم صحبت کن مادر نمیاد Veronica's مادر سلام امیدوارم که ام، منو به جمعتون حاضر سه بپزیدی سلام عزیزم تو خیلی وقت به جمع ما اضافه شدی سلام مامان عزیزم سلام سورا بن الهی قربونت بهت تبریک میگم فقط بهت بگو مراسم عقد چجوری برگزار شد طبق رسم رسوم رسوم مسلمانان تو مسجد لندن جهاتون خیلی خالی بود البته این فقط تشریفاتی بود عقد اصلی رو گذشتیم با حضور خودتون تو ایران اینم سپرایز دوم داده شدیم آخرین اخبار منتشره از سازمانمون مربوط به انرژی هستهیه پس فردا با پست دیه یه دونه وسط میترسن سهراب تو که میدونی من نمیخوامش نبایدم بخوای دکتر رازا شما داری خودت یه منظومه احلا می نویسی اما جالبه بدونی اینجا یه همکار دارم به اسم جری دیویز الان دریم آن دیگه رو یه اه... کبسوله کار میکنیم که هوایه. حاویه... چرا کاشو؟ تو چی این سحر او میشناسیش؟ همینطور یه لفی حرف میزنه. داشتی سریعتر از مهرمان رو بی ملاقات میوفت. اون او زیر نظر نه؟ حالا تو نگرانی شو. پی بابا. نمای از شهر لندن و میدان اصلی شهر سهراب و ورونیکا در حال تفریح و گردش هستند، با خوشحالی توی خیاغونا میچرخم ویترینا رو نگاه میکنن یک کیوز که روزنامه میرسند سرخ را روی جل مجله عکس دکتر آزاد رو میبینه با خوشحالی مجله رو بر میداره و نشون ورانیکا میده اینجا رو نیگا کن دو دو شدیه منه جایزه بزرگی به نمیللی به دانشمند ایرانی بلان هم همکارش با هم دارن مجله رو بررسی. سال یعنی من دارم اشتباه میکنم یا یا واقعا دارم دنبلو پیر میشم ولی نه باید تکن خورد باید یه کار کرد بلان مجلده رو پارت کنه نمای از شهر لندن در شب. جمید دیویس توی حمام در حال دوش گرفتنه صدایی یک آلار میاد تلویزیونم روشنه و یه فیلم قدیمی پخش میکنه. تلفن زنی مخورد. سگ دیویس که جلوی تلویزیون نشسته عکس عمل نشونه. یه نفر با دستکش تیره تلفن رو قرد. گری از حمام بیرون میاد. به سمت سگش میره با باز بازی میکن. یه نفر از پشت ضربه به سرش میزنه. دو نفر جری را از باش میگیرن روی می بیندازن یکی از مهاجمین روشیدنی الکولی رو توی دهنه جری میریزه به زور سعی میکنن به خوردش بدن. بعد لباسهای رسمی تن جری میکنن و بعد مستانه میشورن. <تصفيق> <تصفيق> از پنجره مندازانش بیرون جری دیویز روی سنگ فرش خیابون میفته و میبهد آقای اسمید و سهراب توی دفتر اسمی در حال گفتگو هست شاید نشه از این دومی سار رفت. ولی نه از آقای دکتر سهراب آزاد آبای اسمید ما به وقت و بودجه بیشتری احتیاج داریم وقت و بودجه؟ چیزی که خودم در اختیار ندارم چطور میتونم به تو ببخشم خودکشی دیویس برنامه های گروه ما رو مقتل کرد پروژه ما شما تموم بسر تموم اسمین که رو ما دوست ندارم ما جلوتر بریم برونیکا باره سهراب از جاش بلن بیریت این هفته برگشت بانه داخترم برای امشب کسی شب اومشم باید بری اونجا و نماینده گلیم بطر رو مزوراً جاجی کنیم به همین زودی؟ بله بدون من و به تنهایی منم باید اینجا بمونم با این هوش ذکاهات تحکیشیده نمیدونم به چه دردی میخورم پس تو میری دیگه میبینی که چاره‌ای ندارم بلی زود برمی گردم یه شب بارونی آسمان رد و برق می زنه خانه نامورد دبه کار روی میزه موبایل سهراب زنی مخوره سهراب روی مبل خوابش برده بعد از چند تا زنگ از خواب می پره هوشی رو بر می خدایا. خدایا. سهراب آماده میشه و به سرعت با ماشین حرکت هرقدر تو مسیر سعی میکنه نمیتونه با موبایل تماسه جلوی آقای اسمیت می‌شه، وارد ساختمون میشه. زخمی و خونالوده. سرعت پله ها رو بالا میره جسد یکی دیگه از کار کنان توی پله است آقای اسمیت به سمت اتاق اسمیت میره آقای اسمیت اسمیت نیمه جون و خونالود پشت میزش نشسته سورا جلوتر میره چی شکه آقای اسمیت چی شده؟ تو؟ سهراب از پشت کرکره پنجره نگاه میکنه دو تا از مهاجمین رو به دست میبینه از اتاق بیرون میان اونا به سمت سهراب میان سهراب به سرعت از ساختمون خارج میشه توی آپارتمان میره سراغ کتاب خونه یکی دو تا کتاب رو سریع ورق میزنه سیدی رو پیدا میکنه لپتاب رو باز میکنه ب فاصله با برادرش تماس میگیریی گیجان همونطور که با برادرش حرف بزن سوار ماشین میشه نه نتونست چیزی بیشتری بگه سیدی رو چک کردم همه فایلش خالی بود. مال منم هستم داده شدید. شاید میخوام منم برم دارم میرم فرودگاه باید برم پیش برونیکا ایروان ورونیکا اونجاست داداش ولی جونش در خطره باشه باشه به من که رسیدم اونجا به زنگ میزن باش قربان نه نه. خدافر. مرکز تمرینات تیراندازی پلیس. سرهنگ در حال تیراندازی تمرین هفت سر در حال نظارت به تمرین سرهنگه من میدونم تو دستت رو خوب بردی اما رفاقت با دکتر آزاد نباید باعث بشه که شما تو کارت احساسی همان شما قبل از هر چیز یک مهمور آلی روتره هستید این سفر هم یک مهموریت ویژه قرون مرزیست برای شما دکتر آزاد هم یک دانشمند تحت حمایته نه یک رفیق یا دوست صمیمی روشن شد؟ بله قربان محفظ باشید سرهنگ و موفقش همراه هم پیله ها رو بالا میره نمای سفارت ایران در ایروان سرهنگ و دکتر آزاد با هم از در امارت سفارت بیرون میان با تاکسی توی خیابون هستن برانیکا جلوی ساختمان هتل منتظره به ساعتش نگاه میکنه قدم میزنه دکتر و سرهنگ با هم میرسن از دور ورونیکا رو میبینن و به سمتش میرن خیلی خوبه که یه زن از نبود مردش اینطور میتابی کنه چقدر به سهراب و این زن اتماد داری؟ به اندازی چشام؟ چشم منم به خیلی اعتماد داشتن تو اتاق هتل ویرونیکا و دکتر آزار همراه سرحنگ نگران هستند و با هم گفتگو گو تا صحیحا ناخرین تماسه شما با سهراب پیش از ترک لندن بوده؟ ولی اون حرفی از سیدی گفت گفتاره با اولین پرواز مید پیشه من نگرانم بود حتی درباره فوتی پدر منم گوشی سرهنگ چیزی من گفت خدا رحمتش کنه. بله سرهنگ به آرامین دور میشه و آهسته صحبت میکنه بایدتون فکس میکنم بله منتظرم خداحفظ دکتور نگران سرهنگ و نگاه میکنم میدان اصلی شهر دکتر و سرهنگ با هم میرند دکتر با تلفن سرهنگ تماس میگیره دکتر آزاد و سرهنگ جاهای مختلفی رو با هم سر میزنن می زیر یک پل خارج از شهر دکتر آزاد جسد سهرابو میبینی سهرابی که شاهنا نخونه سهراب نیست فراد خود بپنه؟ آقابت هم مثل سورا بشان همینش دفلکی بر جوری هرمی شد سورا مخلص دادشم سرهنگ از دور نظاره میکنه اطرافشون پلیس های استادن بردشوی آخ خدا. سرهنگ به سمت معمولانه آمبولانس میره دکتر بالای سر سهراب میرسه به شدت گریه میکنه پیشانی سهراب رو میبوسه <تصفح> <تصفح> سرهنگ سمت دکتر آزاد میاد اونا بقل میکنه و دکتر روی شونه ی سرهنگ گریه میکنه ورونیکا میرسه بالای سر سهراب میاد و ملافه سفید و از روش کنار میزنه جسد تو اینجا مدامس شده. سرهنگ و دکتر آزاد به سمت ماشین پلیس میرن. سرهنگ یکی از نیروهای تحت امرش رو توجیه میکنه. گارد د فرانت دور. رسبشن، نگهبانی، ببین، خوب ببین. برو بایست تو رسبشن. این بده. تو اتاق هتل وسائل سهرابو بررسی میکنه چرا اونو نو کشتن؟ دکتر آزادم استاده سرهنگ میاد داخل مطاق چی رو پدرمو کشتن؟ چی رو سهرابا من چیز نگفت؟ اون نمیخواست نراحت بشه. در حال تاثیری در روند این جرائینات نداشت چرا داشت؟ نمیذاشتم بیاد اینجا برمیگشتم لندن برگشت به لندن اشتباه خانم چه اون موقع چه الان؟ فرقی اونا دارن یکی یکی افراد خودشون از بین می برن من که سردر نمیارم فرونیتا تو جونت در خطری ببریت سهران شرط بده شدت متوجه ما فعلا باید برگردیم تهران زورا... من واسه فکر کنم سورا سدی سورا رو تموم چی میشه بابا واقعا سهرام نمارده اونو کشتن مسجد شهان دکتر عزاد و سرهنگ داخل مسجد نمازشون تمام شده ورونکا میترسه اون فکر میکنه بعد از تولد بچهش تو ایران فلش میکنیم که به در حال بچه باید یه جای بزرگشه تا اینکه بی سر پرست بمونه میدونم که خیلی سخته ولی بهتره که هر چه زود ج ساختمون هتل. یه ماشین با راننده و سرنشین منتظرستادن. یکی از خدمه هتل که داره ملافه ها رو میبره بهش حمله میکنن سرهنگ و دکتر آزاد به حیات هتل میرسن. سرهنگ مشکوک میشه سب کن دنبالم بیا یا و دکتر وارد سرسرای هتل میشن به ریخته است نوبتدی زی؟نی بدی به سمت پیشم میرن دو نفر رو اونجا با گلوله زدن سرحین جیبه نیروی تحت امرش بررسی می کنه از جیبش اصللح در میاره ورودیا؟ با ورنیکا تماس میگیره بله شد برای تو کنو قایم شد چرا؟ مگه چطور شده؟ همین که گفتم یه نفر در اتاق باز میکنه. میکنه یه خانم بیاردن ورنیکا رو گرفته و با اسلحه تحتیدش میکنه اونووی بالا کنو برده سرهنگ از داخل حیات میبینه. به سمت سرهنگ تیراندازی یعنی خواهی از داخل حیات به سرحنی چلیک میکنه سرحنی به سمت زن مهاجم نشونه میگیره و شلیک میکنه تیر به زن میخوره ورنیکا رو سرحی مهاجمی رو که توی حیاطه با تیر میزنه یکی از مهاجمی فرار میکنه به سمت ماشین بره سرحنی دنبالش میدوه در همین حال پلیس میرسه دکتر آزاد و ورنیکا از هتل بیرون میان از دور سرهنگو می بینن دیگه بیانو پلیس مدارک سرهنگو کنترل میکنه. تو. اوکی اوکی گلان روی دریا در حال جتسکیه یه نفر تو ساحل تلفنو نشونه گلان میده سری میاد و تلفن از خانه میگیره چطور ممکنه؟ یعنی این درد مشکله؟ منستن از اولم نقاید به تو با آدم های احمقت اعتماد میکردن سر مزار سهراب همه جمع ما در بیتابی میکنه سر هنگ با تلفن مشغول صحبته و از هزاره کزاره میکنه کردم وای علی جان آنچی که آنچی که آنچی که آنچی که آنچی که آنچی که آنچی که آنچی که آنچی که حالا تکلیف این دختر بیچاره چی میشه نمیدون حلیچان مادر بهش بکنی اینجا مثل خونه خودش این بیچاره هم شوهرشو از دست داد، هم پدرش نمیخوام احساس قربت کنم فقط بهش بگو مراقب خودش خودشون اون امانتی صرفت باشه ببیدم صدای قرآن ورونیکا بلن میشه اتاقو ترک میکنه ورودی فرودگاه سرهنگ از دو نگاه میکنه یکی از مسافره رو زیر نظر برو مسافر مورد نظر میشین روی یکی از سندلی های انتظار و وسایلش رو کنارش میزین یه گروهی رد میشن و جلوی دید سرهنگ رو میگیرن وقتی رد میشن یکی از کیفهای مسافر نیست کیف کو؟ سرهنگ به سرعت با همراهان از سالن فرودگاه خاله میشن دنبالم بیا یکی از خرابکارا که روی سندلی دراز کشیده بود بلند میشه کیف گوه شده دست اونه نگاهی به اطراف میکنه به آرامی سالن انتظار رو ترک میکنه در کیف باز میکنه یه سری ابزار و وسایل داخل کیف جاسازی شده یکی یکی با احتیاط اونها رو از کیف خارج میکنه روی میز کنارش گلم مشغول تست روی یک سر پلاستیکیه هوکینه سیگارش میزنه برای خودش نوشیدنی نیست داخل اتاق مسافر خرابکار میاد <تصفيق> یه رو جاسازی کرده در میاره تا تعویل مسافر بده همزمان توضیحاتی که قبلا برای مسئولینش داده به خاطرش میاد در یه جلسه که معمورین سازمان های اطلاعاتی هستند این خانم داره توضیح میده. این قطعات فلزی آغشته به اورانیوم را که در پوشش حفاظتی مخصوصی قرار داره، توسط یک برنامه ریزی دقیق و یک شک الکتریکی مثلا باتری موبایل فعال میشه و موج تشرشاتش محدوده، یک کیلومتر رو در زمان نیم ساعت و یک ساعت محدوده ی پنج کیلومتر اتمسفر رو آلوده میکنه و به موازات اون آلوده شدن تحسیصات هستی این تشکیلات در مقابل تشکیلات ما با تمام اعباد وسیعش چیزی نیست که امکان نفوذ نداشته باشه به همین خاطر با قاقیت میگم که بسته های سفرشی ما همکنون در داخل ایرانه مسافر خرابکار یکی از همین قطعات رو روی یک باتری موبایل جاسازی میکنه خرابکار موبایل رو امتحان میکنه و همه این فجایه دقیقا همزمان با بروده بازرسان و معموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو خواهد داد دیدن این مناظر و جنجل های بعد از آن یکی از قصد بخشترین تجربیات زندگی من خواهد بود معموران آجانس بینار انرژی حسی وارد فرودگاه شد خبرنگارا به سمت اون با گریم متفاوت و در قالب یک خبرنگار وارد فرودگاه شد سرهنگ هم با کوشش خبرنگار اکاس عکسی از بولان میگیرید گزارشی از گلان به عنوان خبرنگار در حال پخشه مسافری که خرابکار بود در حال تماشای گزارش تلویزیونیه می یه نفر آروم به ماشین دکتر آزاد نزدیک بشه به تیر روی ماشین دکتر جاسازی میکنه صبح دکتور با ماشین وارد پارکینگ محل کارش میشه ماشین رو پارک میکنه از ماشین پیاده میشه نگاهی به ساعتش میکنه موبایلش زنی میکنه بله. سرورو نکنم چی شده؟ اتفاینی خب تو مادر کجاست تو با دکتر تماس بگیر اونو در جریان بذار من الان خودمون میرسونم خودت است که روی ماشین دکتر جاسازی کردن فعال شد دکتر دوباره سوار ماشین میشه ماشین روشن نمیشه. الو، نگاه بونید. سلام. دکتر آزاد هستم. گفتونید آژانس خبر کنید بری بله. دکتر داخل ماشین آژانس نشسته. نگاشیدا وا. شما صرف آژانس طرف قرار داده ما اومدید؟ حالا شما رو ندیدم. مشکل این چیه که آژانس ما با آژانس شما قرار داده همکاری دادن. صحیح. من همجای دراننده همیشه بیتون خدمت رسیدم البته با اجازه شما میتونم فترشن از رو ببینم بله بله چرا که من خیلی میم مبایل دفتر زعیف ولی بخبه جناب سرهنگ امالی من کجا؟ شما گویایی، بالا بالا، خود چی شد؟ ام، ام، راننده سرعتشو کم کردی؟ شما حرکت را برای دکتر چاهو در میاره با شما هستم چرا بایستدین؟ من, من نمیفهمم پیادشو خیلی خف خیلی خف دختری که وسط راه استاده روشو پوشونده و اینک آفتابی زده اینجا چه خبره؟ اون کیه؟ آرون به سمت راننده و دکتر میاد دختر روسری را از روی صورتش کنار میزنه عینک رو نیکا بالشتک شکم بند و به سمت دکتر پرتاب میکنه بنا فاصله لگدی به دکتر میزد <تصفح> برونیکا به راننده اشاره میکنه که دکتر که روی زمین افتاده رو کل کنه جلوتر روی یه تپه خاکی دکتر رو میندازه ویرونیکا سرنگی رو از دارو پر میکنه تا به دکتر تذریخ کنه. <تصفيق> وقتی نگاه ویرونیکا به صورت دکتر میافته، خاطره قتل سهراب و بیاد خاطره قتل سرماب رو برور میکنه هیچ منم از چی کار داری میکنی من من کردم تو چه چوده برانی من که من یک معمولیت باشتم که داره به نتیجه میرسه یعنی حسواجت با منم معمولیت بود برات متاسفم متاسفی ولی من تو رو دوست داشتم دوست داشتم ولی حالا دیگه ازت متوفرم واسه خودم متاسفم که به حرفای دادوشالین گوش نکردم و جلووری مثل تو رو نشنخدم نه من و نشمید هیچ کدوم نه نرست یعنی اونم تو کچی اونم جزای این پروژه بود یه قسمت کوچک دفتر کار گلان با تلفن صحبت میکنه من گلانم مواظب باشی تا چند ساعت دیگه میرسه باید حس بشه Keep ready. He must be omitted at once. به بدن سوها میزنه. آمپول رو به گردن بکتر تزریق میکنه آرام آرام <تصفيق> تو یک ساعت دیگه این آنپول توی به سهراب میرسه. خرابکار در حال ترک صحنه است که میبینه جاده رو بستن سرهنگ و نیروهاش جلوی راننده رو میگیرن با اشاره به همکاراش و با لبخند به طرف ماشین گلم تو اتاق هتل مشغول دیدن یه فیلم از محل اسکان ماموران آژانس دوربون و زیر کیف یکی از مامورای آژانس نشکردن مسیر تردد معمورا رستد میشه برونیکا در حال فرار از محل جنایت به اتاقه که وارد اتاقک میشه شمارشگر دستگاه ماشین دکتر مشغول شمارشه همزمان گلان و ورونیکا در حال کنترل و ارتباط اینترنتی و ماهوارهای هستند ام آژانس وارد مجموعه میش گلان پیاده شدن معمورا رو تو صفحه مونیتور میبینه لبخند میزنه. برونیک از اتاق که با دوربین، ورود مأمورا می می‌بینه شمارشگر داخل ماشین دکتر آزاد فعال سیستم گلان در هتل دچار اختلال میشه بلان سیستم جام میکنه نیروهای آژانس در حال خروج از ساختمان هستن در حال خروج از ساختمان هستن گلان چندونش روی تخت انداخته اساسش رو جمع میکنه در اتاق گلانو رو همزمان موبایل گلان زنی میخوره گلان بانگرانی جواب میده بله یه ملمونه ناخونده دمه داره اگه مزاهم بیستم سرحنگ در اتاق گلان رو باز میکنه با اسلاحه وارد میشه. موبایل رو نشون گلان میده و به سمت رو اون پرتاب میکنه گلان روی تخت میشینه سرحنگ رو به روی گلان میشینه اصلهش رو جلوی گلان روی چمدان میذاره آقای دوید گلان افتخار آشنایی با همید رزا کمالی رو دارید بس سیر عجیبش در میاده اون برای آم میگید روباهی لگره اما زرنگ تر از اون کسیه که شکارش میکنه فکر نمی یه روباه زرنگ با پای خودش بیفته تو تله من از هر پای شما هیچ سردر نمیارم اینو بدونید که ما همه چیزو در رابطه با شما و گروهتون میدونیم پس خالش میکنم با من شوخی نکنید سیگار برگ همیشگیتون سرهنگ از جیبش موبایلی که قطعه اورانیومی داخلش جاسازی شده در میگره. اون جلوی گلان شما ایرونی ها در هر شرایط میخواهید مهمون نواز باشید. برای گلان فندک روشن میکنه. گلان سیگارش روشن میکنه. بلند بلند میشه سرهنگ از رو به سمت اون نشونه میگیره وری آقای کمالی من ترجیح میدم به جای روماه شما اغرب باشم وقتی دو تا دور اغرب آتیش قبل از اینکه که بسوزم با نیش خودش یک مرگ یا قطنگیز آقای گلان. دیگه نیشی براتون باقی نمونده خیلی وقت کشیدیمشون برانیکا تروریست حرف ای که دو سال پیش شایه شد که کشته شده در حالی که به نحوی زنده موند تا با هویت دیگه ای فعالیت کنه نباید زیاد بونده اتفاقاً وفادارترین آدمت همیزم بود تا آخرین دسته سعی کرد کم نیاره خیلی عرفهی تر از بقیه بود. بشین شما هیچ مدرک علیه من نداری. من یه خبرنگار نگار نورمه ولی هستم مسئولیت عرفهی دارم آقای کمالی بله درسته به خاطر همینم شما رو تا هواپی ما اسکورت میکنیم امیدوارم تا تلاویف سفر خوب و راحتی داشته باشید آقای گلر چه بلایی سر میگومد با ما ورونیکا آغنده های ساعت برعکس میچرخان ورونیکا از اتاق بیرون میاد اما با سرع میواجه میشه این که همه چی ردیفه آماده است؟ از دشمن های باهوش و بازیگرای های حرفی یه جورایی خوشم میاد بر میگرده داخل اتاق دکتر آزاد آروم نزدیک میشه علی تو... تو که باید مرده باشی بقیه هم پولایی که موجب مرگی مرگ سهراب شد تو کوله پشتید کشف کردیم اما اونا رو عوض کرد تو با گرای بهتر از خود طرف هستی که نمیخوان سرنا رو تر کنن زود باشین دستگاه خاموش کن للا تکدیراندازی از دور اتاک رو نشانه گرفته اصلت تو بنداز بگرنه با فشار این دکمه. بمب فعال میکنم بمب هم که میدونی کجاست نزدیکترین جا به مرکز هستهی زیر ماشین علی تو پارکینگ امکانش هست سرهن اسلحه رو روی میز می‌ذاره. ورونیکا اسلحه رو برمی‌داره. بدبخت. تو این ماجرا خودت هم کاشه میشی مردن من در مقابل فاجعه ای که به سر شما میاد ارزشی رو داره؟ اصاغیانه فکر کن. هیچ چیز ارزش مردن رو نداره. پس اجازه بدید من برم. خیلی خب. کنترل رو اینجا هر جا که میخوای بری برو. فقط اماغت نکن شاید به قول شما من یه زن ضعیفی هستم ولی احمق نیستم ورونیکا با تهدید اسلحه سرهنگ و دکتر از اتاقک بیرون میفرسته خودش هم بیرون میاد گوش کن ورونیکا شو. این دفعه دیگه نجات پیدا نمی کنی ورونیکا شلیف میکنه پشت هم اما خشاب اسلحه خالیه بزرهنگ به ورونیکا حمله رونیکا بلند میشه و با کنترل شمارشگر بمب ماشین دکتر فرار میکنه اون دستگاه رو, را را دستگاه رو از مدار خارج کن. ورونیکا رو هدف گرفته و سرهنگ دنبال ورونیکاست. چلیک نکنید! دکتر آزاد برمیگرده تو اتاق تا دستا رو از مدار خارج کنه. برونیکا اصلاه خودشو در میاره به سمت سرهنگ شلیک میکنه برونیکا تو فضای چمن محووته میدوه سرهنگ تقیبش میکنه دیست شلیک میکنم شلیک میکنم تیر به پای ورونیکا میخوره برمیگرده بازده تیر دوم به سینهش میخوره میافته دکتر بالای سر ورونیکا میاد نیروه امنیتی از هر طرف میرسن درهنگ و دکتر آزاد بالای سر ورانیکا میستن تیم خونسا به اون بایی آمبولانس ایزام تمام تو خوبه؟ گلان داخل هواپیما نشسته سرشو تکیه داده به عقب. انگار خوابش برده مهماندار بهش نزدیک میشه سر دوی بانه نتینگ اوکی خانم مسافر کنار گلان با دست اشاره به سکوت میکنه مهماندارم اونا را ترک میکنه خانم لیوان نوشیدنی خودشو رو با لیوان گلان عوض میکنه نبز گلان رو چک میکنه دست گلان رو رها میکنه گلان مرده اماوای پیامک ارسال این برنامه خوشتون اومده باشه و تا رادیو فیلم دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم خدا نگهدار